انوشی دادگر نویسنده امیرحسین حسین خونجی راوی امیر اردلان داوتی شاقوبا در سال 531 درگذشت و ولی اهدش خسرو که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود به سلطنت نشانده شد هر دو برادر خسرو بعد از درگذشته پدرشان با انتخاب خسرو مخالفت کردند لیکن معبدان موبت و ایران سپاه بوت دو نسخه مشابه از وصیت را که قباد با آنها سپرده بود در شورای بزرگان یعنی شورای خبرگان سلطنت گشوده و قرائت کردند و اعضای این شورا به بد وصیت قانونی گردن نهادند و مشروعیت سلطنت خسرو را تایید کردند بعد از آن هر دو برادر خسرو به اتهام ابراز مخالفت با وسیعتنامه قانونی شاهنشاه و رأی مجلس بزرگان ماکم و محکوم به اعدام شدند و برای آنکه که نتوانند رقیبی برای خسرو پیدا کنند تمام برادرزادگان خسرو از میان برداشته شدند. تنها یک برادرزاده خورد سال خسرو به نام قباد، پسر زام، بیار یکی از بزرگان که آزرگنداد نام داشت مخفی کرده شد و جان سالم به در برد. برای آنکه کشور از تمام آثار عقاید مزدک پاک سازی شود، فرمانی از خسرو گرفته شد که در آن آمده بود. هر گونه و جدل در امر دین خدا ممنوع است. با چون دستوری از آن پس کسی از هواداران مزدک اجازه نداشت درباره او و نهستش در جامعه سخن بگوید در نتیجه میدان برای فعالیت تبلیغی روحانیت سنتی خالی ماند به خاطر اقدامات خشنی که تحت نام خسرو در سرکوب مزدکیان و حمایت از دین فقاهتی انجام شد حوزه فقاهت سنتی لقب روان را به خسرو داد روحانیون سنتی تبلیغات دامنداری بر ضد آین مزدک به راه انداختند و برای آنکه نسبت به مزدک در عوام نفرت ایجاد کنند آین او را با انواع برچسب‌های ناروا به لجن کشاندند و در این را با استفاده از منبرهای تبلیغاتی گستردهی که در سراسر کشور داشتند موفقیت قابل توجهی به دست آوردند به که در نست آینده عبارت زندیگ که برای مزدکیان به کار برده می شد مادل بیدین و گمراه و ضد بشر به عباهی مسلک و فاسد و شورشی تلقی کردید و بقایای مزدکیان در همه جا با نفرت عوام فری ای مواجه شدند که تلقین های شبان روزی روحانیت سنتی آنان را بر ضد مزدکیان برمی انگیرت. همان عوام که تا دیروز مزدک که قدیسان می دانستند امروز به او لعن و نفرین می فرستادند. تبری به نقل از منابع ساسانی می نویسد که اصلاحات مزدک اموری پسندیده بود ولی بدعتهایی وارد دین کرد که او را منفور ساخت. چون خسرو سلطنتش را تثبیت کرد آین مرد منافقی از اهالی فسا به نام زرتشت خورگان را ابطال نمود. این مرد بدعتی در دین زرتشت آورده بود و مردمی از بدعتش متابعت کردند و کارش بالا گرفت و از جمله کسانی که مردم را به این بدعت فراخواند مردی از اهالی مدریه به نام مزدک پور بام داد بود. موضوعی که این مرد برای مردم آراست با آنها را به سوی آن تشبیق کرد عبارت بود از اشتراک در مال افراد، او می گفت این از جمله کارهای است که باعث خوشنودی خداست و بهترین ها را نصیب انسان می سازد و اگر نه آن بدعتها که او در دین وارد کرده می بود اینها اموری نیکو پسندیده به شمار می رفت اون مردم مردمدون پای را بر زده بلند پایگان تشویق کرد ستمکاران را تحریک به ستمگری نمود به بدکاران مجال داد که دست به بدکاری بزنند و بر زنهای پاک دامنانی که پیش از آن از دسترسشان دور بودند دست یابند لذا مردم دوچار بلایای بزرگی شدند که پیش از آن سابقه ای نداشت بعد از آن خسرو جلوی رسوم ناروایی که زرتوش خورگان و مزدک بامداد آورده بودند گرفت و بدعت‌هایشان را از میان برداشت و مردم بسیاری که پیرو این رسوم بدعت‌ها بودند را کشت. البته مبارزه با مزدکی ها در آغاز کارش بدون پاسخ ملت نبود و شورش‌هایی در مناطق مختلف بروز کرد. از جمله در سند و بوست و ارخواتیا و زابلستان، تخارستان، دردستان کابلستان شورش هایی برپا گردید ولی انوشی این شورش ها را با زور تدبیر فرونشاند و به بیان تبری همه این سرزمین ها که از اطاعت بیرون شده بودند را دوباره به تاعت کشاند و مردمی به نام پازر را کشتار کرده بقایایشان را به جاهای دور دست تبعید کرد. اصلاحات انوشی بعد از سرکوب نهست مزدک تراش برای اعاده زمینها و املاک مصادره شده اربابان از جمله اعاده موقوفات تقسیم شده آتشکده ها آغاز شد اما کسانی که سی چل سال پیش از آن زمین های روستایی را به دست آورده بودند مالکیتشان بگونه تثبیت شده بود که دیگر مصادره زمین هایشان شدنی نبود یکی از نتایج اقتصادی نسات مزدک نقل و انتقال نسات وسیع در املاک و ثروتهای ملاکان بزرگ بود و این امر طبقه نوینی از مالکان متوسط را در ایران به وجود آورده بود اینها در زمان انوشیروان نیز به زندگی اقتصادی خیش ادامه دادند آن لایه اجتماعی که از آن زمان به بعد در تاریخ ایران به صورت یک طبقه پردامن با نام دهکانان تجلی یافت خانواده های روستاها بودند که در اثر نهست مزدک بر زمین های ملاکان سابقی تحویلشان بود دست یافته بودند و فرمان های قباد در دور نخست پادشایش به مالکیتشان مشروعیت بخشیده بود و دستگاه سیاست ساز ایران در عهد انوشی روان نمی یا به صلاحش نبود که به آنها کاری بکند البته آن گروه از افرادی که مزدکی بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و املاکشان نیز مصادره شده به نزدیکانشان واگذار کردید و عقیدهشان به راه های گناگون سرکوب شد تا دین سنتی با همه ارزشهایش پابرجا پا بر جا بماند. طبق فقه سنتی هرکس از آین مزدی بیرون میرفت از میراث خانوادش محروم میشد و داره ها و املاکش در حیاتش به وارسانش می رسید. این امر در زمان انوشیروان به نوبه خود به جابجایی مالکیت ها و توسعه املاک برخی از نومالکان روستایی کمک کرد و آنچه طبقه دهکانان نامیده شد را در جامعه پدید آورد که از طبقات سنتی مجزا بود و در ردیف طبقات زینوفوز کشور قرار گرفت با وجود جنایت های بسیاری که در دوست سال آغاز سلطنت انوشیروان بر آزاد اندیشان کشور رفت انوشیروان وقتی از مرحله پلو گذشت تصمیم گرفت که خودش تصمیم گیر کشور باشد و دست به سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زیاد رویهای گذشته را جبران کند نتایج اصلاعات مزدک و قباد به حدی گسترده بود که برای دستگاه سیاست ساز ایران از میان بردن آنها و پاسگرداندن کشور به دوران پیش از قباد و مزدک به هیچ وجه امکان پذیر نبود. دربار ایران فقط میتوانست با اصلاحات معتدلتری آنها را به نفع طبقات حکومتگر کشور تعدیل کند و این کاری بود که خسرو انوشیروان انجام داد. به سبب یک سلسله اصلاحات اجتماعی سمربخش بخش که خسرو انوشیروان انجام داد مردم ایران در زمان خودش به او صفت دادگرد دادند داد که تلفظ کانش داتا است در زبان ایرانی یک معنا بیشتر ندارد و آن همان قانون است دادگر به معنای قانون گذار و سازنده قانون است. به مسئول نظارت بر اجرای قوانی نیز داد ورز گفته می شود و او کسی است که قانون را به درستی اعمال و اجرا می کند و تا وقتی پای منافع شخصی خودش نیز در میان باشد از قانون تخطی نمی کند. این واژه در زبان کنونی ما، داور تلفظ می شود و او کسی است که بر اجرای قرارداد و توافق نامه قانونی نظارت دارد یا مسئول اجرا و اعمال آن است خسرو و مجموعی از قوانین ابداعی برای اصلاح اوضاع اجتماعی وضع کرد و دستگاههایی برای اعمال و اجرای آنها به وجود آورد که زیر نظر شخص خودش عمل می کردند. چون که قوانین او منافع طبقه نوپدید دهکانان را مد نظر داشت مزایایش شامل حال های بسیار گسترده ای از مردم کشور شد و خوشنودی همگان را به دنبال آورد تا جایی که مردم کشورمان اصلاحات مزارک را به فراموشی سپردند و نوای ستایش از قصرو انوشیروان را سر دادند از آنجا که درآمدهای مالیاتی اساس درآمد خزانه دربار را تشکیل میداد و از آنجا که وصول مالیات از دهکانان آسانتر از وصول آن از ملاکین سنتی بود انوشیروان با صدور دستور هایی که ظاهرا داله بر تمایل شاهانه به تعمیم ادالت بود از منافع دهکانان حمایت نمود و به قدرتگیری آنها کمک کرد این امر برای دربار ایران از دو جهت سودمند بود از طرفی حمایت گسترده مردمی را برای انوشی روان به دنبال می آورد و از طرف دیگر بر درآمدهای مالیاتی دربار می افزود. به فرمان او زمین های مزروعی و باقستان کشور از نوع پیمایش و آمارگیری شد. سازمان های دادگستری و مالیاتی نوسازی شد. در سراسر کشور عدالت هایی برای بررسی حکومت حکومتگران محلی دائر گردید. از میزان مالیاتها کاسته شد و برخی اقدامات مهم مستمر بخش مثل توسعه تأسیسات آبیاری و ترمیم قنوات یعنی کنها و بنای سدها و ترویج کشاورزی به عمل آمد. او ادارات مالیه را از نو تنظیم کرد و افرادی نسبتاً مورد اعتماد را بر سرین ادارات گماشت. طبق قانون جدید مالیاتی مقرر شد که هر کدام از محصولات کشاورزی مثل گندم و چو، انگور و برنج و خورما و زیتون مالیات های سالانه ثابتی که بین هشت درهم تا یک ششم درهم برای هر جریب در نوسان بود اخذ شود. برای پیشوران و بازرگانان و افزارمندان مالیات سرانه موسوم به که مقرر کردید که فقط از مردان قادر به کار در سن 20 تا 50 سال گرفته میشد و کودکان و زنان و پیرمردان و افراد از کار افتاده از آن مستثنا بودند این مالیات به نسبت حرفه و ترامت های افراد بین 4 تا 12 درهم در سال در نوسان بود طبقهی قانون مزاره و باغ‌های کوچک و زمین های کم درآمد از مالیات معاف شدند و این امر رضایت های کم درآمد را از شاهنشاه فراهم آورد. طبقه نوپای دهکانان از این اصلاحات امتیازات زیادی به دست آورد و به یک طبقه مرفه و نسبتاً پرنفوذ تبدیل شد که در آینده سیاسی کشور سهم مهمی را ایفا کرد و از نفوذ مالکان سنتی کاست. همین ام هم به نوبه خود یک نوع عدالت به حساب می آمد زیرا از امتیازات طبقات سنتی به نفع این طبقه که نسبت به طبقات سنتی دامنه گسترده ای داشت خواسته میشد مالیات پیشوران و سوداگران و پیلوران شهری و روستایی نیز تحت نظم ضابطه نوینی قرار داده شد و طبق تقسیمات دقیقی که از این لایه‌های اجتماعی به عمل آمد مراتب این مالیات ها بین 4 تا 12 درهم در سال تعیین شد که به خاطر کاستن اثراتان بر مردم در سه چهار ماه پرداخت می این مالیات ها را انوشی روان اسیار یعنی خودیاری نام داد به فرمان انوشیروان قزات و رؤسای های محلی که عموماً معبدان و هیر هیربدان بودند، مأمور نظارت بر اقص مالیات شدند و این قزات وظیفه داشتند که از هرگونه اچاف در امر مالیات جلوگیری کنند. یک سازمان بازرسی شاهنشایی متشکل از افراد درست کار و مورد اعتماد شاه نیز برای نظارت بر کار اینها تشکیل شد که زیر نظر شاه عمل می کرد. در قوانین مدنی نیز به خصوص قوانین مربوط به خانواده تغییرات و اصلاحات عمده‌ای داده شد که در تنظیم خانواده بسیار مؤثر بود. از جمله مقرر شد که آن دسته از جوانان خانواده های اشراف کم درآمد که قادر به ازدواج نیستند، به هزینه دولت ازدواج کنند و در ارتش به خدمت گمارده شوند. طبق فرمان خسرو خاندانهای بزرگ و همپایی این جوانان نسبتا اشرافی معذف شدند که دخترانشان را به ازدواج اینها درآورند. ما به درستی نمیدانیم که جوانان کم درآمد خاندان های اشراف چه کسانی بودند؟ ولی میتوان حد زد که اینها فرزندان زنان حرم سراها بودند که در زمان مزدک از حرم بزرگان بیرون آمده به ازدواج کسانی در آمده بودند و سپس در جریان اعاده املاک مصادره اشراف به حرم سراها اودت داده شدند اما فرزندانشان از انتصاب به خاندان مادرانشان محروم گشتند اینها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف به شمار می رفتند. ولی چون که پدران واقعیشان جز طبقات اشراف نبودند، نمی توانستند از امتیازات مستقیم اشرافی برمان شوند. پس با فرمان قانونی شاهنشاه در زمره اشراف قرار گرفتند و از حمایت مالی دربار برخوردار شدند. این جنبه از اصلاحات انوشیروانی به پیدایش یک لایه نوین اشرافی منجر شد که به خاطر برخورداری از مزایای ناشی از اصلاحات اجتماعی انوشیروان برای دربار ایران وفاداران بسیار شایسته ای شدند. چون که خسرو انوشیروان در صدد کاسن از نفوذ زورمندان و سپهداران سنتی بود، برای آنکه بهانه برای سرکوب و تضعیف آنها داشته باشد، ادالت خانه ویژه تحت ریاست شخص خودش تأسیس کرد و به سراسر کشور اعلام کرد که هر کس که از دست حکومتگران و بزرگان ستمی ببیند میتواند شکایت خویش را به گوش شاه برساند، و چون افراد عادی قدرت دستیابی به شاه را نداشتند شاه دستور داد زنجیر فلزی اطرازی که یک سر آن به ایوانش منتهی می شد و سر دیگرش تا دور دست های کاخ می رسید کردند و کسی که تزلمی داشت خودش را به این زنجیر می رسند و آن را می و با به جنبش در آمدن آن و نواخته شدن زنگ هایی که به این سلسله آویزان بود شاه متوجه حضور یک دادها در بیرون کاخش می شد و به داد او می رسید. داستان‌های متعددی که درباره عدل انوشیروانی پرچآمنده و وارد کتب تاریخ شده است، حکایت مجازات‌هایی است که زورمندان کشور در اثر ظلمشان به افراد راهیت به آن مواجه شدند و در نتیجه بسیاری از املاک و اموالشان را به فرمان شاه از دست دادند. این های تاریخی از های شماری از شخصیت‌های کشور سخن گفتند که به گناه ستم‌هایشان به آن گرفتار آمدند. از جامل زورمندانی که به فرمان انوشیروان اعدام شدند، یکی هم حامی اولی او سپه سالار ماه دشمن مزدک و مزدکیان بود. شاه برای اینکه بهانه را برای اعدام ماهبود داشته باشد در حینی که ماهبود سرگرم دیدن یک سان نظامی بود او را به حضور طلبید طبیعی بود که ماهبود در آن حالت نمیتوانست فرمان شاه را فورا اجرا کند بلکه مجبور بود آن را به تأخیر بیاندازد روان این تأخیر او را بیادبی نسبت به موافق خود و شاه و بی توجهی به فرمان شاه تلقی کرد و فرمان داد او را بازداشت کردند و چند روز بعد ماکمه و محکوم به ادام گردید و به دار آویخته شد مجموع این اصلاحات رضایت پخش با گذشت سالها انوشیروان را به یک شاهنشاه دادگر و ادالت گستر و رعیت پرور مبدل ساخت و البته او به حق شایسته این القاب هم بود روابط ایران روم در عهد انوشیروان. در سال 533 دربارهای ایران روم برای انعقاد صلح دائمی وارد مذاکره شدند و در پیان دو طرف توافق کردند که زمینهای اشغالی را به باز بازگردانند و مرزهای دو کشور را به حالت سابق درآورند هیچ کدام از دو دولت در آینده در نزدیک مرزهای یکدیگر تأسیسات نظامی ایجاد نکنند و برای همیشه در همزیستی مسالمت آمیز به سر ببرند این صلح راههای بازرگانی بینالمللی شرق و غرب را بر روی ایران گشود و حرکت کاروانهای تجارتی ایران و نقل و انتقال کالا در میان هند و چین و ترکستان و روم درآمدهای هنگفتی را نصیب کشور کرد در نتیجه رونق کشاورزی و تجارت، سنایه کشور رو به رشد و توسعه نهاد و شکوفایی اقتصادی چشمگیری به دنبال آورد که سمره آن عاید همه مردم کشور گردید و باعث رضایت همگانی از دولت انوشی روان شد. با وجود قرارداد صلح دائمی، دولت روم به حکم خصیصه تجاوز طلبی ذاتیش از مداخله در پاره امور که مربوط به ایران پیشد خودداری نورزید در سال 539 در گرجستان بر سر تعین شاه ناآرامیهایی بروز کرد. دولت روم از این پیشامد بهره گرفته در گرجستان دخالت کرده به بهانه حمایت از یکی از مدعیان سلطنت سپاه سپاهبان کشور فرستاد و در زم بر شد که با استفاده از این فرصت ارمنستان غربی را اشغال کند. خصوانو شیروان به قصد ممانعت از دخالت رومیان در امور گرجستان و ارمنستان که ایران و روم خود مختاریشان را به رسمیت شناخته بودند در اواخر سال 539 به سوریه لشکر کشید افامیه و حلب و چند شهر دیگر را گشود و انتاکیه را که پایتخت شرقی دولت بیزانس بود گرفته پادگانش را ویران ساخت سربازان پادگان انتاکیه و صنعتگران هنرمندان رومی را به اسارت گرفته با خود به ایران برد و در شهری که برای آنها در نزدیکی تیزپون بنا کرد به نام رومیگان اسکان داد. گزارشی درباره این شهر جدید و جماعات رومی که در آن اسکان داده را تبری به روایت می کند که حقیقتا ما را ناچار می سازد که بشر دوستی و بزرگواری انوشی روان را بستاییم عبارت تبری، چنین است شاه فرمان داد که شهر انتاکیه را به همان شکلی که بود با خانه‌ها و خیابان‌هایش و هرچه در آن بود را برایش ترسیم کردند و شهری به همان شکل در کنار مدائن بنا کرد که همان شهر معروف رومیه باشد و اهل انتاکیه را حرکت داده در آن شهر اسکان داد و چون وارد شهر شدند، اهل هر خانه به خانه‌ای که شبیه خانه خودش در انتاکیه بود وارد کردید و چونان بود که انگار از انتاکیه خارج نشده بودند. هرچند که این گزارش مبالغ آمیز است ولی خبر از آن میدد که اسیران رومی به شهروندان ایرانی تبدیل شدند و همه گونه آزادی به آنها داده شد و آنها برای خودشان کلیسا و مراکز دینی ایجاد کردند. یک معنای دیگر این گزارش می تواند آن باشد که بخشی از جماعات انسانی ناراضی از سیاست های رومیان همراه با فتوحات شاهنشاه در شام به اطاعت دولت ایران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته به ایران کوش داده شده در شهر نوسازی در کنار تیسبون اسکان داده شدند. خسرو در ادامه فتواتش به سوی آسیای صغیر حرکت کرده از آنجا روانه گرجستان شد. نیروهای قیصر را از گرجستان بیرون کرد و شهر بندری لادکیای گرجستان بر کرانه شرقی دریای سیاه را که رومیان اشغال کرده بودند آزاد ساخت. قیصر روم پس از این شکست ها پیشناد مذاکره برای صلح داد. مذاکرات صلح دو دولت منجر به یک مطاركهٔ پنج ساله شد و بر طبق آن ایران زمینهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ایران در روسیه را به دولت روم باز داد مرزهای دو کشور به حالت سابق درآمد و قیصر که به سبب تجاوز به خاک گرجستان آغازگر جنگ شناخته میشد مجبور به پرداخت قرامت جنگی شد اما این متارکه نیز چهار سال بعد در پی تحریکات رومیان در گرجستان نقص گردید و جنگ دو دولت از سر گرفته شد. این وضع جنگ و متارکه متوالی که بیشتر ایامش را در حالت صلح تشکیل میداد تا آخر عمر انوشیروان چندین بار تکرار شد. رومیان بر همان عادات تجاوزگری ذاتی که داشتند در هر فرصتی میکوشیدند به قلم قلمرو ایران دست اندازی کنند و هر بار ایران پیروزمند در میآمد و قرامتهای قابل ملاحظه‌ای از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن سهم هزینه نگهداری در بند قفقاز به ایران بر سر جای خودش ماند نتیجه نهای این جنگ ها که مسبب اصلی آنها رومیان بودند برای هر دو طرف در حد هیچ بود و در این میان آبادی های سوریه و شرق آسیای صغیر متضرر شدند در فرامرزهای شمال شرقی ایران در نیمه دوم قرن ششم موجی از قبایل ترک در یک خزش تازه در بیابان های غرب خوارس در جهت مرو و گرگان روانه شدند قضش ترکها ها سرزمین هایی که دست هبتال بود را نیز در معرض تهدید قرار میداد. درباره ایران بیمیل نبود که ترکان با هبتال وارد جنگ شوند. چون در این صورت ایران می توانست از تعهدات مالی که هنوز در قبال اخش و نوداز داشت شانه خالی کند. با این حال درباره ایران می با اقدام آقلانی مرزهای کشور را در برابر این ترکان حفظ می کرد. به دنبال مذاکراتی که هیئت اعظم خسرو انوشیروان با خاقان انجام داد، قرارداد صلح بین دو طرف منعقد شد و دو طرف متعهد گردیدند که مرزهای یکدیگر را احتمالا در شمال سرزمین گرگان مورد احترام قرار دهند و از تجاوز به آن خودداری کنند. با وجودی که خاقان در این زمان نسبت به ایران نظر خوش نشان داد، خسرو نتوانست پیمان دوستی با او منعقد کند. چه بسا که ارتباطات نهایی قیصر با خاقان در این زمان مانع نزدیک بیشتر خاقان و شاهنشاه شده باشد زیرا به تحقیق دو سال بعد یک پیمان دوستی محرمانه میان خاقان و قیصر منعقد شد که بر طبق دو طرف قرار گذاشتند که در فرصت مناسب از شمال و غرب به ایران حمله کنند درس کردن این خبر به دربار ایران روابط ایران روم را به تیرگی کشاند طبق توافق محرمانه که میان خاقان و قیصر صورت گرفته بود، ایران در سال 570 از شمال غرب به طور همزمان مورد حمله خاقان و قیصر قرار گرفت. خاقان به سوی جنوب پیش پیشرفته تا حوالی مرف پیشروی کرد و قیصر از پرات گذشته حران را گرفت و نصیبه این را به محاصره درآورد. خسرو یک سپاه نیرومند به شرق قسیل کرد. این سپاه توانست خاقان را به سختی شکست داده تا مرزهای مورد توافق عقب براند شخص خسرو در رأس یک سپاه عظیم به مقابله با قیصر شتافت او نصیب این را از ماسر پیرون آورد و حران را باس پس گرفت و شکست سختی به قیصر وارد ساخت آنگاه از فرات گذشته بعد از تصرف شهرهای افامیه و دارا و حلب بر انتاکی دست یافت و پادگان و کاخهای آن شهر را که مقر حاکمیت رومیان بود به آتش کشید و بخش اعظم سوریه را متصرف شد. قیصر از این شکست ها به جنون مبتلا شد و خلق گردید. مجددا دولت روم با دولت ایران وارد مذاکره برای صلح شد و چون قیصر روم آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل کرد که خسارت جنگی به ایران بپردازد ولی سلی که بعد از این میان ایران روم منعقد شد باز هم در اثر تجاوزهای رومیان پایدار نماند و جنگهای ایران روم که ارسه آن شرق آسیای صغیر و شمال شام بود همچنان به تناوب ادامه یافت شکرنده سل در هر بار رومیان بودند و فاته در هر بار ایران بود و دربار روم مجبور به پرداخت قرامت جنگی به ایران میشد. تصرف کشور یمن توسط انوشی در کشور یمن در منتها جنوب عربستان در اوایل قرن ششم میلادی مبلغان مسیح که بنابر روایتها از شام وارد یمن شده بودند فعالیت داشتند و در دو نخست این قرن بخشهایی از قبایل یمن را به دین مسیح درآوردند بخش مرکزی و شمالی آن کشور در آن زمان مسکن قبائل یهودی همیر بود که ما نمیدانیم آیا یهودان مهاجر بودند یا چنان که در روایت سنتی عرب آمده است در آن اواخر یهود شده بودند و یا از میان بومیانی بودند که داستانشان در تورات آمده بود یعنی داستان بلغیس ملکه سباه ولی این را می دانیم که دین یهود یک دین خالصا قبیلهی بوده که هر که از قبایل ابری نبوده نمی آن دین را داشته باشد. در همسایگی جنوبی یمن و فراسوی تنگه باب المندب که دروازه ورودی به آبهای دریای سرخ بود کشور هبشه قرار داشت که در اواخر قرن پنجم آین مسیح را رسمیت بخشیده بود و با دولت روم هم پیمان بود. از آنجا که گسترش آیین مسیح در یمن موقعیت قبایل همیر را به خطر افکنده بود پادشاه همیر کوشید که از گسترش بیشتر این آیین جلوگیری کند در نتیجه دولت مسیح هبشه به عنوان سرپرست دین مسیح دست به دخالت در امور یمن زد و نیروهای هبشی در اواخر رو به اول قرن ششم آن کشور را اشغال کردند از آن زمان جنگ های تراز مدتی بین قبایل مسیحی شده و قبایل همر در گرفت که سرانجام در سال 570 هفتاد به اشغال سراسر یمن توسط نیروهای هبشی و بر افتادن سلطنت همیری ها انجامید. این واقع درست در زمانی اتفاق افتاد که انوشیروان در شرق و غرب درگیر نبرد با ترکان رومیان بود. یکی از رؤسای قبایل همر به نام سیف زی یزن که از برابر حبشی ها گریخته بود به ایران پناهنده شد و از خسرو انوشیروان تقاضای کمک برای بازیابی سرزمینش کرد. خسرو انوشیروان با استفاده از این فرصت تصمیم گرفت که یمن را از دست همپیمانان رومی ها بیرون بکشد و تحت اداره ایران درآورد. تنگه بابل مندب تنها راه دسترسی رومیان از راه دریا به شرق آفریقا و هند و جنوب شرق آسیا بود اگر خسرو انوشیروان موفق میشد که یمن را بگیرد ایران بر تنگه باب المندب مسلط میشد و نقل و انتقال ناوگان بازرگانی رومیان در دریای سرخ را فرج می کرد و می توانست به این وسیله ضربه سنگینی به اقتصاد روم بزند او بدون تردد به تقاضای سیف زیگزن پاسخ مساعد داد و در سال 571 سپاه دیلم را متشکل از 800 جنجو به سرکردگی یک سپهتار کار آزموده به نام خرزات با منصب وهراز به یمن گسیل کرد روایت های سنتی که نزد تبری و دیگران سعب شدند میگویند که بخش اعظم سربازان این سپاه یا کل سپاه از زندانیان مزدکی بودند خسرو با این اقدامش با یک تیر دو نشان زد. او هم از شر این جوانان مزاحم مزدکی خلاص شد و هم برای یمن دست یافت. این سپاه موفق شد که هبشی ها را از یمن اخراج کند و در یمن تشکیل یک حکومت دیر پای ایرانی داد که تا سال 632 یعنی تا اواخر عهد ساسانی برای مدت 60 سال دوام یافت. لازم به ذکر است که چون مسیحیان دست به کشتار یهودیان همیری زدند و آنها را مجبور به پذیرش مسیحیت کردند بسیاری از آنها به درون حجاز همسایه شمالیشان گریختند و سپایان حبشی آنها را در درون حجاز تعقیب کرده تا کنار مکه پیش رفتند در همین زمان بود که یمن مورد حمله نیروهای ایرانی قرار گرفت و حبشی ها مجبور شدند حجاز را رها ساخته به یمن باز کردند این حادثه در تاریخ مکه به عنوان آغاز تاریخ به شما رفت و آملفیل نام گرفت. در روایت مردم مکه گفته می شد که وقتی هبشی به قصد انهدام کعبه که خانه الله بوده به کنار مکه رسیدند الله سپایانی از پرنده را بر سرشان فرستاد و پرندهها سنگ ریزههایی را بر سر هبشی فرو افکنده آنها را مار کردند. داستان این واقعه بعدها ها در قرآن سوره ابابیل ذکر شد و گفته شد که پرندگان ابابیل که ریزه هایی در چنگال و منقار داشتند بر سر اصحاب فیل ریختند و آنها را کشتار کردند شخصیت انوشیروان اقدامات اصلاحگرانه و پیروزیهای مداوم خسرو انوشیروان از او یک شخصیت استثنایی در نظر ایرانیان ساخت که تقدسی به مراتب بیش از شاهنشاهان بزرگ تاریخ گذشته ایران به او داد. درباره عدالت‌گستری و ادالتی‌گستری انوشیروان دهها افسانه بر سر ها افتاد که بیشتر آنها مایه در حقیقت داشت. ایران در زمان او به اوج شکوه رسید. گسترش باسرکانی پینونی، رشد صنعت توسعه کشاورزی رسیدگی به تزلمات توده ها توجه به امر دهکانان یعنی طبقه نوظهور مالکان روستایی و عادلانه بودن مالیات های ارزی و سرانه همه اینها ایران را به صورت کشوری درآورد که مردمش از وضع موجود رضایت خاطر داشتند و به نظر می رسید که ایران از تمام خوشبختی های خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و آسایش زندگی می کنند. پایتخت ایران در زمان انوشیروان توسعه بسیار زیادی یافت و به بزرگترین، آبادترین و شکوهمندترین شهر خاورمیانه تبدیل شد. در جهان آن روز خارج از چین هیچ شهر دیگری به آبادانی شکوه و وسعت پایتخت ایران نبود پایتخت ایران در آن زمان مجموعهی بود از هفت شهر آباد و پرونق و به هم پیوسته در دو کرانه شرقی و غربی دشله که دقلوی تیسبون و به اردشیر در مرکز آنها قرار داشت ظاهرا تقسیم هفت گانه پایتخت به تقسیم جمعیتی بوده و در هر شهری یک جامعه خاصی میزیست است. خانواده ها و کاخهای سلطنتی عموما در تیسبون و به اردشیر مستقر بودند و کاخ شانشایی در محله از پانور به اردشیر قرار داشت. شهرهای دیگر به ترتیب نظامی، دینی، صنعتی، تجارتی و کارگری بود و هر کدام دارای اخشار اجتماعی مخصوص به خودش بود. نامهای شهرهای دیگر متصل به پایتخت یکی رومیگان و دیگری ماخوزه بوده است که در اولی صنایه پیشرفته رفته رواش داشت و در دومی هرفه های زریفی از قبیل زرگری و این دومی از دیرباز و از عهد حقامنشی محل اسکان جماعات یهودی بود و بیشتر یهودیان این شهر به کارهای زرگری و سرافی اشتغال داشتند. رئیس توایف یهود ایران ملقب به راش نیز در این شهر اقامت داشت. در زنیدان و بلاش آباد از دیگر شهرهای متصل به پای تخت بودند که هر دو از شهرهای قدیمی بودند و بخش اعظم ساکنانش را های بومی تشکیل می‌دادند. ساکنان عموم شهرهای هفتگانه ثروتمند بودند و ترین مردم جهان به شمار می‌رفتند. خانه های این شهرها به طور کلی مجلل و کاخمانند بود محله های هر شهر را خیابان های وسیع سنگ فرش از هم جدا میکرد و باغ ها و گلگشت های زیبایی که خانه های سفید رنگ و تمیز و نورانی را احاطه میکرد به هر کدام از این شهرها زیبایی افسانه واری بخشیده بود علاوه بر پایتخت چندین شهر آباد و پر جمعیت دیگر در نوایی مختلف ایران وجود داشت که کدام به نوبه خود با پایتخت دم از برابری می زدند. بلخ در باختریا، بخارا در مرو و هرات و نیشاپور، در خراسان، ریدر شمال، نهاوند و همدان در غرب، بیلتان که در مسیر جاده تجارت بین شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسیاری داشتند. اصفهان که پایتخت سنتی و مقدس ایران به شمار می رفت، مرکز تجمع اشراف و روحانیون و اقامتگاه بزرگترین خاندانهای ایرانی بود و از این نظر شکوه بسیار زیادی داشت و بسیار آباد بود. اسپان یک مرکز بزرگ صنعتی و از شهرهای پرونق و پر و پرچمیت و ثروتمند بود. زرنگ سیستان در کنار رود هیرمند که بر مسیر جاده بازرگانی ایران هند قرار گرفته بود یکی از مراکز مبادله کالاهای دو کشور به حساب می آمد و از این نظر شهری بسیار پررونق بود نصیب این که در تقاطع جاده های زمینی و دریای ایران قرار گرفته مرکز وسط ایران و امپراتوری روم بود مهمترین مرکز مبادله کالاهای های محسوب می شود. گندی شاپور از مهمترین شهرهای علمی و صنعتی کشور به شمار میرفت و اهمیتش از این لحاظ بود که موسسات و مجتمعهای علمی و فرهنگی نوین در آن قرار گرفته بود و دانشگاه آن شهر که به دستور انوشیروان ساخته شده بود شهرت جهانی داشت. جاده بازرگانی زمینی که چین را به امپراتوری روم وست می کرد از راه بلخ و مرو و نشاپور و گرگان و رای و همدان به تیسپون منتهی می شد و از آنجا از راه نصیبین هران و کرکمیش به آسیای صغیر و شام وست میگشت. ایران تنها راه ارتباطی زمینی شرق و غرب جهان متمدن بود و در شرایط صلح می بهترین بهرهبرداری اقتصادی را از این موقعیت جغرافیایی ببرد در عین حال ایران در عهد ساسانی که تازه میدان تجارت دریایی آبهای خلیج فارس و دریای هند بود و از زمان انوشیروان به بعد دریای سرخ نیز هیت فعالیت دریای ایران شد. ناوقان بازرگانی ایران که در خلیج فارس در بنادر متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دریایی خاورمیانه تسلط داشتند و تجارت دریایی بحر احمر را نیز به خود اختصاص داده بودند. بندر هرمز بر دهانه خلیج فارس در آن زمان بزرگترین بندر بازرگانی بین و یک شهر چند ملیتی بسیار ثروتمند بود. کشتیها کالاهای بازرگانی را از بندرگاه های هند و آفریقای شرقی به ایران هم می کردند و از آنجا به درون ایران یا به شام و روم منتقل می شد. همچنین کالاهای ایرانی و کالاهایی که از کشور روم آورده میشد، به وسیله این کشتیها به شرق آفریقا و بنادر هند انتقال میافت. مهمترین بندرگاه جنوب عراق در زمان ساسانی بندر میشان بود که دروازه تیسپون بر خلیج فارس به شمار میرفت و نقطه ارتباطی آبی پایتخت با دنیای خارج بود و در جنوب پارس نیز بنادر مهمی کشور را با بنادر شرق آسیا متصل میساخت که مهمتر از همه بندر سیراف بود. رفتار اجتماعی انوشی روان بیانگر آن است که او نه تنها دارای تحصیلات عالیه بوده، بلکه درباره هر کدام از علوم زمانه آشنایی نسبی داشته است. اگرچه در اوایل سلطنت او با مزدکیان سختگیری بسیار شدیدی شد و تقریبا همهشان از میان برده شدند ولی او از وقتی سن بلوغ را در نوردید و خودش تصمیمگیر کشور شد نسبت به عقاید دینی اخشار ملت از یهود و مسیح و بودایی مسامهی تا سرحد احترام داشت و در زمان او ادیان مختلف درون کشور از همه گونه آزادی کامل برخوردار بودند. مدرسه طبی شاپور که به وسیله حکمای سریانی و یونانی و هندی اداره میشد از همه گونه حمایت و کمک دربار برخوردار بود حکمای سریانی و یونانی که از دست تضییقات و فشارهای متعصبان مسیح روم می گریختند در ایران با آغوش باز پذیرفته میشدند و به وسیله شخص خسرو مورد نوازش واقع میشدند و امکانات زیست شایسته آنها به فرمان شاه فراهم میگشت و هرگاه و بیگاه برای شرکت در مجالس علمی خسرو فرا خوانده میشدند تا شاه از اطلاعات علمی آنها بهره برگیرد انوشیروان یک اندر زبط دانشمند در خدمت داشت که سرآمد علمای روزگار بود این شخص همان بزرگمهر داستانهای ایران است که شخصیتش در همه روایت‌های تاریخی بعد از عهد ساسانی جای خاصی باز کرده و طی قرون متمادی تا قرنها بعد از بر دولت شاهنشایی و گسترش اسلام در خاورمیانه به عنوان برجسته‌ترین شخصیت سیاسی، دانشمند و مردم دوست مطرح بوده است یکی از نشانه های سلطه معنوی این بزرگ مرد تاریخ ایران در جهان اسلام آنکه شخصیتی چون جاهز معتبرترین کتابش البیان و تب را با کلام حکیمانی از بزرگ بختگان آغاز کرده است. علاقه انوشیروان به ادبیات علوم و فنون تا به حدی بود که برخی از جوانان خاندانهای اشرافی را برای فرا گرفتن علوم روز به کشورهای دوردست دست اعزام داشت. داستان برزویه که برای فرا گرفتن علوم به هند رفت و در بازگشت از آن دیار ترجمه کتاب معروف کلیله و دمنه را به همراه آورد و به عنوان بهترین توفه از طرف خسر و انیشی مورد قبول قرار گرفت یک نمونه از این اعظام دانشو به فرمان شاهنشا به دیار دوردست برای فرا گرفتن علوم روز بود در زمان خسرو انوشیروان هنرها پیشرفت بسیار زیادی کرد و در این موسیقی از مقام خاصی برخوردار کردید اگر بهرام گور برابر افسانه ها خونیاگران را از هندوستان به کشور آورد تا وسایل طلب مردم را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشیروان هنرمندان و موسیقی دانان را در کنف حمایت گرفت و هنر اشرافی که تا آن زمان سابقه نداشت در کشور به وجود آورد که در سالهای بعد در دربار پرشکوه خسرو پرویز تجلی یافت. هنرهای نقاشی و تذهیب و مجسم سازی در عهد خسرو را شیروان به اوج رسید و سپس در زمان خسرو پرویز به نزد بیشتر دست یافت و در این زمینه ها آثار شکوه مندی در ایران آفریده شد که در نوع خود بین نظیر بود. استخری نویستد که در نزدیکی کازرون یا شاپور یک آرشیو بزرگ سلطنتی در کوهستان دائر بوده که مجسمه های گونانگونه هرکس شاهن شاهان ساسانی با شرح کاملی از کارنامه هر کدام از آنها در آن نگهداری می شده است. ما نمیدانیم که این قار در زمان ساسانیان چه وضعی داشته ولی می‌توانیم چنین تصور کنیم که بعد از حمله عرب ها به ایران تخریب عناصر مادی تمدن ایرانی به دستانها ایرانیان بخشی از آرشیو سلطنتی استخر را به این مکان منتقل کرده نهان داشته بودند تا از دست برد عرب ها به دور بمانند. آنچه سخری به چشم خود دیده بقای آثار مجموعه عظیمی از ساختهای هنری بوده که در آن قار به ودیعه نهاده شده بود. همچنین مسعودی در التنبیه در کتابی گزارش کرده است که در سال 113 هجری در یکی از گنج خانه های ایران کش شده بود و به دستور هشام ابن عبدالملک به عربی ترجمه شده بوده است. او در این باره چنین می نویسد. به سال 303 هجری در شهر استخر پارس نزدیک نفر از بزرگان ایرانی کتاب عظیمی دیدم که شامل بسیاری از علوم ایرانیان و اخبار پادشان و کارها و شیوه های کشورداری آنها بود. مطالبی که در این کتاب بود را من در کتاب های دیگر ایرانیان مثل خدای نامه و آین نامه و گاه نامه و جز اینها ندیدم. در این کتاب تصاویر 27 تن از شاهان ساسانی که دوتن از آنها بانو بودند کشیده شده است. به نحوی که چهره هر کدام از آنها نشان میدد که در روز وفاتش پیر یا جوان بوده، چه زیوری داشته، تاجش چگونه بوده، وریش و چهرش به چه شکل بوده است. در این کتاب بیان شده که این شاهان 433 سال و یک ماه و هفت روز سلطنت کردند، همچنین بیان شده است که ایرانیان وقتی یک پادشاه می‌میرد او را به همان شکلی که بوده است تصویر می‌کردند و صورتش را به گنجخانه می تا زندگان پس از او صفت او را بدانند هر پادشاه را در حالت ایستاده و در جنگ و در حالت نشسته بر تخت سلطنتی به تصویر میکشیدند و در باره شیوه کشورداری و رفتار هر کدام از این شاهان با کارگزاران و اطرافیانشان و همچنین درباره رخداد هایی که در زمان سلطنت هر کدام از اینها در کشور پیش میآمده در این کتاب نگارش کرده بودند. یا داشت روی این کتاب نشان میداد که این کتاب در نیمی جمادی و ثانی سال 113 هجری در گرچ شاهنشاهان شاهان ایران کش شده و نسخه از آن برای هشام ابن عبدالملک خلیفه اوموی به عربی ترجمه شده است. نخستین پاد شاهانشان اردشی ردای ارقوانی و شلوار آسمانی به دارد و تاجی زرنگار به رنگ سبز برسر و نیزه در دست دارد و به حالت ایساده به تصویر کشیده شده است. آخرینشان یزگرد پور شهریار پور خسروپرویز ردا سبز رنگ زرنگار بر و شلوار آسمانی رنگ ملیل دوزی به پا دارد چاجی ارقوانی بر سر نهاده است نیزه در دست دارد و بر شمشیری تکه زده و ایستاده است این تصاویر با انواع گوناگونی از رنگ های شگفتانگیز که مثل آنها در این زمان وجود ندارد و با آب طلا و نقره و محلول مس کوبیده شده کشیده شده است اوراق این کتاب تارای رنگ های بسیار زیبا و عجیب است و از بس که این کتاب با صرافت و مهارت تهیه شده بود من ندانستم که اوراقش کاغذ است یا صفحه طلا. انوشیروان به بازی ها نیز علاقه بسیاری داشت و این داستان که در زمان او شطرنج از هند به ایران آورده شد و در ایران رواج یافت در همه کتاب تاریخی نقل شده است مجموعه روایت هایی که درباره باره خسرو انو برچامانده از او یک شاهنشاه نیک سیرت و آزاد اندیش و دانش پرور و هنر دوست و و مردم و با تدبیر و شجاع به تصویر کشیده که نمونهش کمتر در تاریخ ساسانی دیده شده است. بسیاری از خصوصیاتی که به او نسبت دادهاند کاملا به حقیقت نزدیک بوده و او همانی بوده که در روایت ها آمده است. تنها نقطه منفی دوران سلطنت انوشیروان سختگیری با هواداران مزدک بود که اقدامات انسانی او را نزد محققان تاریخ ایران تحت و قرار داده و نوعی بیدادگری را در سلوک اولی او به پرده ترسیم کشیده است آنچه در زمان او با مزدک و مزدکیان رفت برای تاریخ ایران بسیار گران تمام شد آینی که مزدک آورد میتوانستی یک وحدت ملی دراز مدت را در کشور به وجود آورد. موزه شاه را تقویت کند. اطاعت آهاد ملت را نسبت مقام سلطنت تأمین سازد. دین ایرانی را از آن حالت رکود و جمودی که دست و گریبانش بود برهاند و به صورتی دنیا پسند و مردمی در جهان مطرح کند و جازبه ای با ان ببخشد که به تواند جماعات انسانی خاورمیانه میانه و اطراف مرزهای ایران را به سوی خود جذب کرده به یک دین جهانی مبدل کند. و همچنین ایران را از خطرات آینده مسون نگاه دارد. از آنجایی که پیروان تراز اول مزدک را روشنفکران و روحانیون آقا و روشنبین زرتشتی تشکیل می دادند، سرکوب نهزت مزدک و نابودسازی روشنفکران هوادار او به بهای گرانی برای کشور تمام شد. هواداران نهزت مزدک آگاهان و زمانشناسانی بودند که درد جامعه را می دانستند و نسبت به حقایق جهان اطلاع وافی داشتند، عقاید دینی در خاورمیانه آن روز در یک تحول عظیم بود و این را مزدک و پیروانش درک کرده بودند و می به این تحول جامعه عمل بپوشانند لیکن فقاحت سنتی و واپسگرا و جامد اندیش می خواست از همان ارزشهای دیرینه که بازمانده دوران زندگی سیاسی کهان بود دفاع کند و بدان وسیله امتیازات خودش را محفوظ بدارد تقیب و آزار هواداران مزدک کشور را از بهترین و آگاه ترین و فداکارترین فرزندانش محروم ساخت از آن پس فقط روحانیونی در کشور ماندند که در جمود فکری و واپسنگری وحشتناکی میزیستند و با تعصبات خشکشان دین ایرانی را به پایین ترین مرحله انحطاط رساندند دینی که اینها از آن دفاع می کردند مدتها بود که از درون تویی شده و پوسیده بود و هر ضربه کافی بود که به حیات آن خاتمه دهد و به همراهش همه ارزشهای تمدنی وابسته به آن را در مرز نابودی قرار دهد این چیزی بود که حوضه فقاحتی واپسگرا و متعصب و منحت و اقتدارگرا نمی توانست درک کند و روشنفکران درستین متوجهش بودند و میکوشیدند از سقوط همه چیز ایران جلوگیری کنند و یک ایران نوین با ارزشهای دنیا پسند بسازند که در سایه آنها به حیات تمدنی و نقش سازنده تاریخیش ادامه دهد سقوط نهزت مزدک بدایت یک نهایت قمنگیز بود و همه تلاش های اصلاحی سازنده و مترقی انو و بزرگمه نتوانست از حرکت ایران به سوی این نهایت جلوگیری کند خوزه فقه سنتی با تنگ نظری ها و تعصبات خشک و انحصارطلبی طلبی آزمندانش به زودی هم دین رسمی را با آداب و رسوم خرافی و فرسوده و دست و پاگیرش به سوی انحطاط و تباهی پیش برد و هم دولت را به همراه آن به نابودی و زبال کشاند متاسفانه انسانهایی که در جمود فکری و در آثار ما قبل خویش میزیستند و هیچ همی جز پاسداری از ارزش های که که برآورنده خاستانها در راه بهره از تودی آمی و فریب خورده است ندارند هیچگاه نمی توانند متوجه شوند که چه خطرهایی آنها و ارزش مورد دفاعشان را از بیرون اعاطه کرده است و هر بار که آزاد اندیشان و خیرخواهان و در شناسان در صد اصلاحاتی برمیآیند، تا جامعه را در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنند متعصبان و واپسگرایان و جامد اندیشان چون هر گونه حرکت اصلاحی را منافی مصالح و منافع و امتیازات خودشان می دانند. زیر پرچمی که به ادعای اینها پرچم دین است برزده هر گونه حرکت اصلاحی بسیج می شوند و صد رای روشن فکران اصلاح طلب می گردند و با این کارشان کشور و ملت را در جمود نگاه می‌دارند تا در آینده به یکباره در برابر تون باد تعول آنی از پادر درآیند و به همراه آنها همه ارزش تمدنی نیز از پادر آید و همه چیز از دست برود و خود آنها نیز همراه سیل خروشانی که به راه میافتد روفته رفته می شوند. به هر روی اقدامات ادالت گسترانه ی هرچند که در زمان خودش از طرف بزرگان کشور با سکوت و تعمل برگزار شد. اما با مخالفت اشراف سنتی که از سیاست های اصلاعی زیان دیده بودند در زیر قلیان داشت و منتظر فرصت بروز بود. خسرو انوشیروان دادگر بعد از 48 سال شاهنشاهی پرشکو در اواخر زمستان 579 میلادی در تیسبون درگذشت. و بعد از او تنها پسرش خرمز که مادرش دختر خاقان بزرگ پادشاه کاشقر و سراسر ترکستان بود و دست پرورده انوشی روان و بزرگ مر بود و همچون پدرش ادالت و مردم دوست بود به حکومت رسید ایران زمین و پارسیان به وجود چون تو افتخار میکنند انوشی دادگر پایان